قصل اول اگر می خواهید اصل جمع کنید کندوی اصل رو واجبو نکنید در هفتم مه سال 1931 تقییب یک جرایتکار که محیجترین تقییب تا آن زمان در نیویورک بود به پایان کار خود رسید بعد از هفته ها تحقیق و تقییب کرولی معروف به کرولی دو سلاحه همان قاتل مسلحی که هرگز نه سیگار مصرف کرد و نه به آخر خط زندگیش رسید او در خیابان وست اند در خانه معشوقه اش به دام افتاد 150 مأمور پلیس و کاراگاه مخفیگاهش را معاشره کردند آنها با ایجاد سوراخی در سقف خانه میخواستند با گاز اشگاور قاتل پلیس‌ها را از آنجا بیرون برانند. پس از آنکه که سلاح‌های خودکار را در ساختمان‌های اطراف کار گذاشتند، بیش از یک ساعت صدای شلیک سلاح‌های کمری و خودکار در یکی از بهترین مناطق مسکونی نیویورک تنینانداز شد. کرولی پشت صندلی پوشیده از وسایل و خرطوپرت با ترس و وحشت قوز کرده بود و پی در پی به سمت پلیس‌ها شلیک می‌کرد. ده هزار نفر حیجان زده نبردانها را تماشا می کردند زیرا تا آن زمان چنین اتفاقی در پیادروهای نیو یورک مشاهده نشده بود وقتی کرولی دستگیر شد مأمور آلی رتبه پولیس ای پی ماررانی اظهار داشت کرولی دو یکی از خطرناکترین است که در تاریخ نیویورک دیده شده است او می گفت کرولی به سادگی آب خوردن آدم می کشت اما کرولی دو سلاهه با چه دیدی به خودش نگاه می کرد؟ در دیگه زمانی که پلیس به روی آپارتمانش آتش گشوده بود او نامه نوشت که عنوان آنچنین بود خطاب به هر کسی که این نامه را می خاند در حالی که زمین نوشتن نامه خونی که از جراحتهایش جاری شده بود کاغذ را رنگین می کرد کرولی در آن نامه نوشته بود در سینه هم یک قلب خسته است اما مهربان و دلسوز قلبی که به هیچ کس آزاری نبیرساند مدت کوتاهی قبل از این واقعه کرولی با اتومبیل همراه دختری که دوستش داشت به بیرون شهر رفته بود نایهان افسر پلیسی به سمت اتومبیلش آمد و گفت گواهی نامت رو بده نگاهی با آن بیندازم کرولی بدون اینکه کلامی حرف بزند اسلحه‌اش را دراورد و با شلیک گلوله‌ای افسر را نخش زمین کرد وقتی افسر وقت برگشته روی زمین افتاد کرولی از اتومبیلش بیرون پرید هفت تیر افسر را برداشت و با آن گلوله‌ای دیگر در بدن نیمه جانو به خاک و خون افتاده ای افسر شلیک کرد این همون مرد قاتلی بود که در نامه اش نوشته بود در سینه هم یک قلب خسته است خسته اما مهربان و دلسوز قلبی که به هیچ کس آزاری نویرسند کرولی به مرگ با سندلی الکتریکی محکوم شد وقتی او را به محل مجازا تشاوردند آیا فکر میکنید اون نزد خود میگفت تاوانی که میدهم نتیجه ی آدم کشیست؟. نه او با خود گفت تاوانی که میدهم نتیجه دفاع از خود است نکته هصلی داستان این است کرولی دو سلاح به دلیل هیچ کدام از جرمهایش خود را سرزنش و ملامت نکرد آیا این نمونه یک نظر و ایدهی غیر واقعی در میان مجرمان و خلافکاران است؟ اگر این چنین فکر میکنید به نمونه دیگری توجه کنید من بهترین سال‌های زندگیم را در جهت شاد کردن مردم و یاری رسانی به آنها برای داشتن یک زندگی خوب صرف کردم. اما چیزی که به آن رسیدم سوء استفاده بوده است. من یک امسان شکار شده هم. این سخنه کاپون بود. بله من فورترین دشمن ملت امریکا. بدکارترین رهبر دسته جنایتکاران که در شیکاگو هفتیرکشی می‌کرد. خود را محکوم نکرد در حقیقت او به خودش به عنوان بانی خیر و نیکوکاری در برابر مردم نگاه میکرد نیکوکاری که نه تنها از او قدردانی نشود، بلکه قربانی سو اتفاهم نیز شد سکالتز هم قبل از این که در نوارک با گلوله های جنایتکاران بدنش قطع قطع شود همین مطلب را گفته بود او که از بدنام‌ترین انسان‌های موش صفت نیویورک بود، در مصاحبهش با یک روزنامه خود را نیکوکار و خیرخواه مردم معرفی کرده بود و واقعاً هم به این مطلب ایمان داشت. من راجع به این موضوع با لوئیس لاوز که سالها زندانبان زندان نفرت انگیز سینگ سینگ نیویورک بود، مکاتبات جالبی داشتم. او در این رابطه اظهار داشت تعداد کمی از مجرمان زندانی در زندان سینگ سینگ خود را برد می دانند آنها هم مثل من و شما انسانند این استدلال می کنند و توضیح می دهند آنها می توانند شهرده هند چرا قفل گاف صندوق ها را شکستند یا در شلیک گلوله و آدم کشی چست و چابک بودند بیشترشان با استفاده از درک، استدلال، صفصت و منطق، تلاش می‌کنند اعمال خلاف اصول اجتماعی خود را توجیه کنند حتی برای خودشان در نتیجه با قاطعیت بر این مطلب پا فشاری می‌کنند که هرگز و به هیچ وجه نباید زندانی می‌شدند وقتی آل کاپون کرولی دو سلاهه داچ اسکالز و زنان و مردان ناامید دیگری که پشت میله‌های زندان اسیرند خودشان را بابت کارهایی که کردند ملامت و سرزنش نمی‌کنند دیگر چه انتظاری از آن دسته که با ما در ارتباطند میتوان داشت؟ جان وانامیکر معسسه ی فروشگاه های زنجیری با همین نام اعتراف میکرد که سی سال پیش آموختم کج کچخلقی و گرگر کردن کاری احمقانه است من با محدودیت های موجود در زندگیم به اندازه کافی مشکل و دردسر دارم که بدون دلخوری از اینکه که خداوند به نسبت شایستگی ها موهبت هوش را بین مردم تقسیم کرده با آنها دست و پنجه نرم کنم وانا می کر را به سرعت آموخت اما من شخصا می بایست یک ثوام قرن اشتباهات عبلهانه ای را در این جهان مرتکب می شدم تا این نکته برایم یقین شود که در 99 درصد از موارد مردم خودشان را نکوهش و انتقاد نمی کنند و برایشان اهمیتی ندارد که چقدر کارشان اشتباه بوده است انتقاد عبس و بیفایده است چون فرد را وادار به دفاع از خود میکند و معمولا او را به تلاش و تغلام می تا خودش را توجیه کند انتقاد خطرناک است چون مباهات و قرور لازمی شخصیت فرد را جریه میکند. به احساس اهمیت داشتن او صدمه می و موجبه رنجش خاطرش می شود بی اف سکینر روانشناس معروف تیه آزمایشاتش نتیجه گرفت حیوانی که به دلیل رفتار خوب و درستش جایزه می گیرد نسبت به حیوانی که به دلیل رفتار نادرستش تنبیه می شود بسیار سریع تر مطلب را یاد می و چیزی را که یاد می گیرد بسیار مؤثرتر و بهتر حفظ می کند. مطالعات و تحقیقات بعدی نشان دادند که این نتیجه در مورد انسان ها نیز صادق است. اما با انتقاد نه تنها تغییرات مندگاری را به وجود نمی آوریم بلکه باعث رنجش و آزردگی خاطر نیز می شویم. هانس سلی روان شناس بر جسته دیگر معتقد بود. ما به همان اندازه که تشنه تحیید و تفزین هستیم به همان اندازه از محکوم شدن در هراسیم. Azur de giver range shiki interoad ijad mikonad. Meetavan het kar yaron, kar mandon, a zoyehane body, wat u stond dat as iferu hier George B. Johnstone, as Ioleto, Oklahoma. Mas ulamni at de kar yaron, yik shirk mas uli at hoyo, nezor bar kar yaron boot. حتماً کلاه ایمنی بر سر گذاشته باشند. او در گزارش خود می گوید هر وقت کنار کارگرانی می آمد که کلاه نداشتند به آنها یاد آور می شد که او در آین نامی شرکت اختیارات زیادی دارد و آنها باید به دستورش عمل کنند و از کلاه ایمنیشان استفاده کنند. در نتیجه کارگران با ترش رویی و کج خلقی کلاهشان را بر سر می و غالبا به محض این که او آنجا را ترک می کرد دوباره کلاهشان را کنار می گذاشتند. در نهایت آقای جانستون تصمیم گرفت روش متفاوتی را تجربه کند. دفعه بعد او با دیدن بعضی از کارگران که بدون کلاه مشغول کار بودند از آنها می پرسید آیا کلاهشان راحت نیست و اندازش نمناسب است؟ سپس با صدای نرم و ملایم به آنها تذکر داد که کلاه ایمنی به منظور محافظت در مقابل زربه ها و صدمات احتمالی تر شده است و پیشنهاد داد که همیشه از آن استفاده کنند. نتیجه این طرز برخورد افزایش اطاعت از مقررات و آین نامه بدون آن زردگی خاطر یا رنجش احساسات بود. در هزاران صفحه از کتاب تاریخ مثالهای فراوانی از بی نتیجه بودن و بی فایدگی انتقادها را می بینیم که چه برجسته و قابل ملاحظه هم بودند مثلاً به جدال معروف بین تیودر روسویلت و رئیس جمهور تافت توجه کنید جدالی که در حزب جمهوری خواه او دو دستگی و اختلاف ایجاد کرد وودرو ویلسون را به کاخ سفید فرستاد جنگ جهانی اول را تحت تحصیر قرار داد و جریان تاریخ را تغییر داد. در اینجا به طور مختصر و مفید به بررسی این بخش از تاریخ می پردازیم. وقتی تهودر روسفلت در سال 1908 دستکاخ سفید بیرون آمد از تافت رئیس جمهور پس از خود به حمایت پرداخت. او سپس به آفریقا رفت و به شکار شیر مشغول شد. اما پس از بازگشت از خشم نزدیک به انفجار بود. او تافت را به دلیل سیاست‌های های مورد انتقاد و عیبجوی قرار داد. تلاش می‌کرد خودش برای دومین دوره متوالی نامزد ریاست جمهوری از طرف حزب جمهوری خواهر روید و حزب بالموس را تشکیل داد. اگرچه او همه این اقدامات را انجام داد اما در واقع حزب جمهوری خواه را نابود کرد. در انتخابات بعدی، ویلیام هاورد تافت و حزب جمهوری خواه توانستند فقط اکثریت دو ایالت را به دست داورند، ورمونت و یوتا. و این سخت در این شکستی بود که حزب جمهوری خواه تجربه کرد. تیودر روزویلت تافت را مقصر می دانست. اما یه رئیس جمهور تافت نیز خود را مقصر می البته که نه. تافت در حالی که عشق در چشمانش بود گفت نمی فهمم چه کاری باید انجام می دادم که ندادم براستی چه کسی مغصر بود؟ روزویلت یا تافت؟ واضح و سریح بگویم من نمی دانم و برایم اهمیتی هم ندارد که بدانم نکتهی که می به آن اشاره کنم این است که تمام انتقادهای تودر روزویلت تافت را متقاعد به اشتباه در عمل کردش نکرد بلکه صرفاً باعث تلاش و تقلای تافت شد که خودش را توجیح کند و بارها با چشمان و عشقالود بگوید نمی چه کاری باید انجام می دادم که ندادم مثال دیگر مربوط به رسوائی شرکت نفتی تیپات دوم است این جریان در اوائل دهه 1920 روزنامه را به سر و همراه با خشم و گیل واداشت و همه ی ملت را تکان داد زیرا در حافظه زندگی بشریت هیچ جریانی مشابه آن برای ملت آمریکا رخ نداده بود حقیقت این رسوایی چنین بود اجازه استخراج زخایر نفتی دولت آمریکا در دو شرکت الک هیل و تیپات دوم به آلبرت بی فال وزیر کشور در کابینه هاردینگ سپرده شد زخایری که برای استفاده نیروی دریایی در آینده در نظر گرفته شده بود اما آیا وزیر کشور اجازه اجرای مزایده رقابتی صادر کرد؟ خیر، او با دوستش ادوارد ال دوهنی قرارداد سوداوری را امضا کرد. دوهنی در مقابل چه کرد؟ او به وزیر کشور فال هدیه ای داد که او دوست داشت آن را یک وام ست هزار دلاری به نامد. سپس آقای فال به نیروی دریای امریکا دستور بلند بالا ای داد تا رقیبانی را که چه نفتشان نزدیک زخایر الکیل بود و نفت را به خود جذب می کرد از منطقه دور کند و دیگر به آنها اجازه فعالیت ندهد این رقیبان که توسط نیروی نظامی و افراد مسلح از زمین و محل فعالیتشان محروم شده بودند به دادگاه پناه بردند و پرده از رسوائی تیپات دوم برداشتند. در نتیجه چنان افتزاهی به بار آمد که کابینه و دولت هاردینگ را بدنام و لکدار کرد تمام ملت از این کار متنفر و منزجر شدند حزب جمهوری خواه در خطر فروپاشی غلار گرفت و آلبرت بیفال در پشت میله های زندان جای گرفت محکومیت شدیدی شامل حال فال شد محکومیتی که کم‌تر کسی در زندگی دیده است آیا او توبه کرد؟ هرگز. سالها بعد هربرت هوور در یک سخنرانی در مجمع عمومی اظهار کرد مرگ رئیس جمهور هاردینگ نتیجه استراب و تشویش او بود چون یکی از دوستانش به او خیانت کرده بود. هنگامی که همسر وال این سخنان را شنید از جایش پرید و در حالی که اشک می‌ریخت با مشت گره شده فریاد می زد. یعنی چه؟ فال به هاردین خیانت کرد؟ نه شوهر من هرگز به کسی خیانت نکرد این خانه پر از تلاوی جواهر ما نمی گذاشت شوهرم وسوسه شود و کار خلافی انجام دهد این شوهر من است که مورد خیانت قرار گرفت او را به سلابه کشاندن و سرانجام به سمت مرگ فجی ایراندند دقت کنید طبیعت انسان را مشاهده کنید؟ خلافکاران و متجاوزان همه را مغصر می‌دانند به جز خودشان را ما همه مثل هم هستیم پس هر وقت من و شما هم وسوسه شدیم که کسی را مورد انتقاد و عیبجوی قرار دهیم آل الکپون، کرولی دوسلاهه و آلبرت فال را به یاد بیاوریم پس قبول کنیم که انتقاد و نکوهش به کبوتری چست و چالاک می که همیشه به سمت خودمان برمیگردد و این نکته را بپذیریم که شخصی را که قصد داریم اصلاح یا محکوم کنیم احتمالاً یا خودش را توجیه میکند و در پاسخ ما را محکوم مینماید و یا همچون آقای تاافت میگوید نمیفهمم چه کاری باید انجام میدادم که ندادم سوپر روز 15 آوریل سال 1865 ابراهام لینکلن در اتاق خواب محققرش به حال احتزار افتاده بود خانه که وسایل و لوازم اندک و کم ارزشی داشت خانه او دقیقا روبروی سینمای فورد بود جایی که جان ویلکس به او شلیک کرد قامت کشیده لینکلن از قطر روی تخت خواب فرو نشستش تاق باز افتاده بود و هم تخت خواب کفایت قامت بلند اورا نمی کرد تابلوی باستازی شده ارزان قیمتی از نقاش مشهور روسابنهور به نام نمایشگاه عصب بالای تختش آویزان بود و چراغ نفتی دود گرفتهی سوسو سو زنان نور زردی در اتاق پخش می کرد هنگامی که لینکولن در حال جان دادن بود وزیر جنگ استانتون گفت آنجا بهترین و بین آقسترین فرمان روا آدمیان که جهان تا کنون به خود دیده دراز کشیده است راز موفقیت لینکلن در رفتن رو برخورد با مردم چه بود؟ من زندگی آبرام لینکلن را تجربه مدت ده سال مطالعه کردم و سه سال وقف نوشتن و بازسازی کتابی با عنوان لینکلن مرد ناشناخته صرف نمودم. به نظرم من دقیق ترین و جامعه مطالعه از شخصیت و زندگی داخلی لینکلن را انجام دادم که برای پژوهش یک فرد ممکن است من تحقیق ویژه ای از متود و روش لینکلن در رفتار با مردم انجام دادم آیا او در انتقاد از دیگران افراد می کرد؟ البته بله در زمان جوانیش که در دره پیجن کریک ایالت ایندیانا زندگی می کرد نه تنها از دیگران انتقاد می بلکه در نامه ها و اشعاری که می مردم را به تمسخور می گرفت او نامه هایش را در جاده بیرون شهر جایی که مطمئن بود دیر یا زود کسی آنها را پیدا می کند می یکی از این نامه ها آزردگی و رنجشی به وجود آورد که سوزش آن عمری دوام داشت Lincoln het to bat us in kedare Springfield, vakilva konun done bot haj reweishut, bon nomahoi kedaruz nomaho chop mi kard, o shekorowa beserohat, hamle mi Amo u inkarra korro, vaharas chant, gohi anjom mi dot. Dar po ize hezoro hajs tsadu du, usio sat madore ize i benome James Shields به ریشخند گرفت لینکولن با نامه ای بینام که در جورنال اسپرینگفیلد چاپ کرد کنایه هایی را نساره او کرد تمام شهر به قهقه افتاده بودند در حالی که شیلدز مقرور و حساس در آتش خشم می سخت. او سرانجام به حوییت نویسنده نامه پی برد روی اصبش سوار شد و به جستجوی لینکولن برامد وقتی او را دید از او دوت به دوئل کرد لینکلن نمیخواست بجنگد چون مخالف دوئل بود اما نمیتوانست هم از این کار سرباز بزند و هم آبرویش را حفظ کند انتخاب سلاح به او واگذار شد لینکلن نسانجوکی بازوان بلندی داشت قددار سوار نظام را انتخاب کرد و مدتی زیر نظر یک مربی جنگ با شمشیر را آموزش دید در روز مقرر او و شیلدز کنار رودخانه میسیسیپی هم دیگر را ملاقات کردند و برای جنگ تا مرگ آماده شدند اما در آخرین دقیقه حامیان و طرفداران آنها در نبرد مداخله و دوئل را متوقف کردند آن روز موهشترین حادثه در زندگی لینکولون اتفاق افتاد که درس فوقلاد گرانبهایی در رابطه با رفتار با مردم به او امو او از آن پس هرگز نامه توهی نامیزی ننوشت و دیگر کسی را به تمسخور نگرفت و تقریبا هیچ وقت کسی را به علت کارش مورد انتقاد قرار نداد در طول جنگ داخلی لینکولن بارها و بارها جنرال های جدیدی را در مقام سالار ارتش پوتوماک منصوب کرد که هر کدام از آنها یعنی مکلان، پوپ، برنساید، هوکر و میادی با اشتباهات نابخردانه و تأصف باری که مرتکب شدند باعث نامیدی لینکولن دران موقعیت شدند نیمی از ملت به شدت این جنرال های نلایق را محکوم می کردند. اما لینکلن بدون هیچ دشمنی و کین توزی به آنها و از سر خیرخواهی و نیکندیشی در مورد هر کدام آرامش خود را حفظ می کرد. از جمله عبارات مورد علاقه او که همواره تکرار می‌کرد این بود قضاوت نکن تا مورد قضاوت قرار نگیری وقتی همسر او و مردمی از دیگر مناطق جنوب منتقدانه در مورد افراد صحبت می‌کردند لینکولن جواب میداد از آنها انتقاد نکنید نکوهششان نکنید اگر ما هم در شرایط آنها می‌بودیم همان رفتار را داشتیم با توجه به آن اگر در تمام جهان یک نفر آنچنان منصف بود که باید از اطرافیانش انتقاد میکرد، آن فرد به یقین شخص لینکلن بود. از همین رو در اینجا یکی از برخوردهای او را از نظر میگذرانیم.